سپاس که که با ما همراه هستید فرشید نسراللهی هستم خبرهای دانمارک در هفته گذشته را به سم شما میرسونم با ما همراه باشید دانمارک ارسال بستههای پستی به محلههای مهاجرنشین را به حالت تعلیق درآورد هفته گذشته پس از سرقت بستههای پستی و خودرو اداره پست و همچنین افزایش ها کلیه کارمندان پست در منطقه مهاجرنشین والموس شرکت دنسته، مقامات این اداره سیستم ارسال بسته پستی در به منظر را به حالت تعلیق درآورد. شرکت دانمارکی سوئدی پست که خدمات پستی این دو کشور را انجام می‌داد، با مشکلات فراوانی در مناطق مهاجرنشین آدنسه روبرو شده. این شرکت از هفته گذشته ارسال بسته‌های پستی در محلهای مهاجرنشین که موجود روبرو بخشیده کارمندان شده را به حالت تعلیق در است. افزایش بیکاری، فقر، کاهش خدمات محلی و گسست روزافزون با جامعه میزبان از جمله نکاتی است که باعث رشد منفی مناطق مهاجرنشین دانمارک از جمله والموس شهر اودنسه شده است. یک خبر خوب از آوس. مدرسه به زبان فارسی در شهر آوس دانمارک به شروع به کار کرد. مدرسه زبان فارسی کلیه دانش آموزان علاقه من به آموزش زبان فارسی از هر ملیت و مذهب و با هر سنی رو با خوشباز میپذرم دانش آموزانی که در حال حاضر در کلاس آمادگی هستند میتوانند در کلاس آمادگی مدرسه زبان فارسی نام نویسینه من ثبت نام از روز یکشنبه شمبه ژوئن تا در شهر انجام میشه اگر قصد سفر به آلمان دارید مدارک شناسایی را فراموش نکنید. آلمان در مرز دانمارک کنترل گذرنامه برقرار کرد. آلمان تصمیم گرفت به طور موقت در مرز با دانمارک گذرنامه مسافران را کنترل کند. وزارت کشور آلمان اعلام کرد در آستانه برگزاری نشست سران 20 کشور صنعتی در هامبورگ ویزای شنگن را که به عثوای غیر اروپایی اجازه مسافرت آزادانه در ایتاد اروپا هوزه اقتصادی اروپا و برخی از کشورها میدهد تا یازده جولای به حالت تعلیق درآورد بر این اساس ورود به آلمان با ویزای شنگن از طریق خطوط هوایی بلا مانع است اما پاسپورت سایر شهروندان کشور اروپایی در صورت, در صورت ورود به آلمان از طریق راههای زمینی یا خطوط راهن از جمله مایک کنترل خواهد شد در همین زمینه مایزر وزیر کشور آلمان با به عنوان مهمترین چالش است تایید تصمیم تعلیق ویزای شنگن از سوی کمیسیون تأکید کرد این قانون بر امنیت نشست اروپا تاثیر خواهد گذاشت قوانین اتحادیه اروپا اجازه تعلیق ویزای شنگن در شرایط بحرانی یا شرایطی که مستلزم تامین امنیت است را به کشورها میدهد اولین کشور اسکاندیناوی پوشش کامل صورت را در مدارس ممنوع اعلام کرد دولت نروژ ای را پیشنهاد داده که چون پوشاندن کامل صورت توسط زنان مسلمان مانع از ارتباط دانش آموزان و معلمان می شود استفاده از آن در مدارس و مرکز آموزشی منع شود به گزارش خبرگذاری بیتی دولت فعلی نروژ که ائتلافی از احساب محافظه کار و راستگراست سال گذشته وعده داده بود در صورت پیروزی با پوشاندن صورت در قالب استفاده از روبنده یا نقاب مخالفت خواهد کرد. وزیر آموزش و تحقیقات در بیانیه‌ای گفت ما نمیخواهیم لباس ها صورت را در محد کودک، مدارس و دانشگاه ها بپوشاند. به گفته ای او این نو پوشش کامل پوشش کامل صورت میتواند مانع ارتباط خوب شود که برای این دانش آموزان برای دریافت آموزش مناسب ضروری است. مقامات نروژی در های آینده در زمینه افرادی که تحت تاثیر این اقدام قرار می گیرند بررسی خواهد کرد. های نروژی اعلام کردند که دولت احتمال میدهد که بیشتر احزاب از این لایه حمایت کند. و احتمالا در بحال سال آینده میلادی در پارلمان تصویب شود. انتخابات پارلمانی نروژ در 11 سپتامبر 2017 برگزار خواهند شد. و این کشور نخستین کشور در میان کشورهای اسکاندیناوی خواهد بود که استفاده از برغه را و هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان منع می‌کند. پنجمین سالگرد ازدواج ملکه دانمارک و پرنس هنریک دانمارک 50 این سالگرد ازدواج مارگاریت دوم ملکه این کشور را جشن گرفت. در این مراسم نمایندگانی از خانواده سلطنتی حضور داشتند. شاه دوخ مارگاریت در دهه ژوئن 1967 با کونت هنری از دیپلمات‌های فرانسوی ازدواج نمود. و کانتری هنری به دنبال این ازدواج با پرنس به پرنس هانریک تغییر عنوان یافت. خداحافظی با رومینگ تلفن همراه در اروپا از پنجشنبه پانزده ژوئن هزینه اضافی استفاده از رومین بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین دانمارک لغو شد کاربران تلفن همراه در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون پرداخت هزینه اضافی به امکانات یکسان دسترسی خواهند یافت بر این اساس شرایط استفاده از تلفن همراه برای تماس تلفنی، ارسال پیامک و دسترسی به اینترنت در تمامی کشورهای محدودیت اتحادیه اروپا به همان شکل و هزینه‌ای خواهد بود که در کشور محل اقامت کاربران در دسترس و آنها میباشد. نخست وزیر دانمارک میگوید اسکت یک بیمار بدحال است. کاسم سن وزیر در یک مصاحبه مطبوعاتی به همراه وزیر مالیات، اداره مالیات اسکات را یک بیماری، بیمار بدحال توصیف و برنامه دولت برای انجام اصلاحات در سیستم جمع‌آوری مالیات و بدهی را اعلام کرد. طبق برنامه اداره مالیات اسکات منحل و بجویان 7 اداره منطقه‌ای و وزایوان را به عهده گرفت. نخست وزیر اعتماد مردم به سیستم مالیاتی را اساس سیستم رفاهی کشور دانست و گفت ما باید اعتماد را به مردم بازگردانیم. باز کردنیم. از سال 2006 به بعد دولت 4000 هزار نفر از کارکنان اداری مالیات را اخراج کرد و در فاصله زمانی بین 2012 تا 2015 به دلیل یک سری رسوایی خزانه دولت از جمعوری 12 میلیارد کرون محروم کردید. بخشی از این ضرر بازپرداخت مالیات به فراریان از مالیات در خارج از کشور بود. محکومیت قانون جدید علیه متدکیان در سالهای اخیر مهاجرانی که برای گذران برای گدائی و گذران روزمره وارد کوبناک میشوند به طور قابل ملازی افزای شفتن تا جایی که چندین نقطه پایتخت به کمپ های کارتونخواب ها تبدیل شده و برای ساکنان مزاهمت ایجاد میکنم به دنبال این وضعیت قانونی در پارلمان به تصویب خواهد رسید که مدت زندانی برای متکدیان را به چهارده روز افزایش میدهد اما این قانون از طرف بی ها محکوم شده آنها معتقدند این قانون قشر آسیب‌پذیر جامعه و به خصوص کسانی که مزایای اجتماعی دریافت نمی‌دارند را برای امرار معاش مجبور به گدای از را هدف قرار میدهد دانمایک بهترین مکان برای کسب و کار سایت اتاق بازرگانی اتحادی اروپا دانمارک را مناسب ترین مکان برای انجام کسب و کار در اروپا معرفی کرده در این مقیاس که نمره صرف تا صد در نظر گرفته می شود دانمارک با نمره هشتات و هفت در صد و کشورهای سوئد و فلاند و نروژ و بریزانی ها در رده بعدی قرار دارد 770 یورو هزینه مجوز اقامت دائم در دالمایک متقاضیان مجوز اقامت دائم در دالمایک باید مبلغ 5670 کرون معادل 770 یورو به حساب دولت واریز نمایند دالمایک بعد از لیتوانی گرانترین کشور اروپایی در سودور مجوز اقامت دائم است هزینه درخواست اقامت در کشورهای سوئد، نروژ و مجارستان به ترتیب 102، 222 و 6 یورو میباشد کشورهای اسپانیا اسلونی، لوکزامبورگ جمهوری چک، پرتغال، اسلوونی هر کدام کمتر از صد برای منظور دریافت می کنن. بهترین کشور برای زندگی کودکان، دانمارک، آلمان، نروژ و آلمان به گفته یونیسف از هر پنج کودک در کشورهای صنعتی یکی در فقر زندگی می‌کند. در آلمان به نسبت وضع کودکان خوب است اما آلمان هم برای ساختن زمینهای مناسب تر برای رشد کودکان باید به ذرات معلق آلوده کننده هوا ها مبارزه کند. به گزارش دونچوله صندوق کودکان سازمان ملل یونسف بعد از تحقیقات خود گزارشی از وضعیت وزی... کودکان در کشورهای مختلف تهیه کرده است. یونسف می‌گوید از هر پنج کودک در کشورهای صنعتی یکی به فقر نسبی در فقر نسبی زندگی می‌کند. به گزارشی که با عنوان ساختن آینده کودکان و اهداف توسعه و پایدار توسعه پایدار در کشورهای غنی تهیه شده از هر هشت کودک در یک در این کشورها یک کودک غذای کافی برای خوردن ندارد گزارش یونسف شامل کشورهایی با درآمد متوسط مانند رومانی، بلغارستان و شیلی نیز می شود آلمان در ردیه دوم آلمان در این بررسی در مقایسه وضعیت خوبی دارد و در میان چلیه کشور شرکت کننده در این تحقیق ردیه دوم را دارد اتریش در ردیه 15 هم قرار دارد و آه... کشورهای اسکاندیناوی و مخصوصا دانمارک در صدر این جدول قرار دارد وزیر مهاجرت دانمارک ادهای قبلی خود را منکر شده دروغوی اتمام تازه خانم اسبرگ، رسوایی جداسازی اجباری زوجهای پناهجو همچنان ادامه دارد. انگل اسبرگ، وزیر مهاجرت دارما که میانی خوبی با مهاجران و پناجوها ندارد، به دردسر تازه گرفته شده. خانم انگل اسبرگ متأهمن به عوض کردن اتهایش، ادعاهاش در جریان پاسخگویی به کمیته ویژه مجلس قانونگذاری دانماک در خصوص دستور غیرقانونی. یه جداسازی زوجهای زیر سن در کمپ های این کشور شده است سال 2016 خانوم بگ دستور جدایی جدا کردن اجباری زنان پناهجوی زیر هش سال را از شوهرشان صادر کرده بود موضوعی که به خودکشی دست کم چهار پناهجوی زن منتعی شد پس از بالا گرفتن اعتراضات نسبت به عواقب غیر انسانی تصمیم خانم. استربرگ کمیته تحقیق از سوی مجلس معمور رسیدگی به شکایات پناهجویان شد و بازپرس پرونده خانم استربرگ را مقصر دانست در جلسه پیشین کمیته رسیدگی به تخلف وزیر مهاجرت دارماک و این مدعی شده بود که در زمان صدور دستور نمیدانسته که دستورش غیرقانونی است اما در جلسه اخیر خانم برگ مدعی شده که اصلا دستوری برای این موضوع صادر نکرده و فقط در نشست خبری زندگی زوجهایی زیر سن در کپای دانماک را غیر قانونی دارست مخالف دولت خانم برگ را علاوه بر قانون شکنی به دروخویی محکوم کردند شاد باشید تندرستیتون پایدار عزیزم